زمائم فصل ششم نفوز سرققتانی سرققتانی همسر طلوعی اگرچه هرگز به عنوان نایب و سلطن حکومت نکرد اما چنان که رابرت مارشال در کتاب طوفانی از شرق شرح داده است یک عضو قدرتمند و محترمه دربار مغل بود رسم مغلان بود که هنگام مرگ خان تا زمانی که مسئله جانشینی او حل شود بیوه او به حکومت بپردازد این رویه فرصت کوتاهی را برای زنان فراهم می تا نفوز خود را در اداره امپراتوری اعمال نمایند با وجود این با نفوز ترین زن در دربار مغل در واقع هرگز به عنوان نایب و سلطنه به سلطنت نپرداخت سرغکتانی بیگی بیوه طلوی پیش از درگذشت او چهار پسر برای او به دنیا آورد. با گذشت زمان روشن شد که خصوصیاتی که پسران طلوعی را برجست ساخت کاملا نتیجه نفوز سرگختانی بوده است. او در سراسر دوران سلطنت اکتای و گیوک به خوبی به عنوان فازل ترین، داناترین و قطعا خردمند زن در دربار مغل نمایان شد و هنگامی که سال خورده شد اهمیتش همچنان فزونی یافت. رشید الدین مورخ ایرانی او را به غایت آقل و کافیه و سرآمد خواتین عالم توصیف نمود. یک شاعر آن اصر حتی به گونه ای احساسی تر گفت اگر در میان زنان زن دیگری را مانند او می دیدم می گفتم که جنس زن بسیار برتر از جنس مرد است. می به این فکر کرد که او که در تمام عمر مسیحی بود امپراتوری در دست خود را به چه صورت اداره کرده است و توانسته است به عنوان نایب و سلطنه حکومت کند یا با چه تفاوتی فرستادگان مختلف پاپ را پذیرفته است ولی مسئله اینها نبود به جای اینها سرغختانی خود را وقف تعلیم و تربیت و پیشرفت چهار پسر خود منگوغان، غبیلای، هولاگو و عریقبوغانه مود او پس از درگزشت گویوک با نقشه زیرکانه و دقیق با باتوخان متحد شد و انتخاب پسر ارشد خود منگوغان را به عنوان خان در سال 1251 میلادی محقق ساخت متاسفانه این زن بزرگ یک سال بعد درگذشت و تنها به قدری زنده ماند تا در پیروزی پسر خود سهیم شود و ببیند که امپراتوری بار دیگر تلاش می کند تا گسترش یابد با وجود این نفوظ او تا مدتها بعد به واسطه ی اقدامات فرزندانش احساس میشد. کوچ نشینان به تجمل روی میمورند. چگیز خان از زندگی تجملی دوری میکرد و از تمایزات اجتماعی پیچیده که او را بالاتر از مردان کشور خود قرار میداد بیزار بود اما چنان که به وسیله این شرح مربوط به دربار غوبیلای قان از کتاب سفرهای مارکو پولو روشن می گردد، جانشینان چنگیز به ثروت و طرق زندگی اشرافی بسیار خوب گرفتند. هنگامی که خان بزرگ به برگزاری مهمانی در دربار اقدام می کند، جایگاه ها در مهمانی ها به شکل زیر ترتیب می آبند. او خود در انتهای شمالی تالار پشت میزی بلندتر از سایر میزها می نشیند. طوری که روی به طرف جنوب دارد. همسر اصلی او در کنارش در سمت چپ می نشیند. در سمت راست در جایگاهی تا حدی کتاحتر پسران او به ترتیب سن در حالی که چنگیز پسر ارشد در جایی بلندتر از بقیه قرار می گیرد و نوهای او و خیشاوندان نزدیک خاندان سلطنت می نشینند. آنها به صورتی قرار می گیرند که سرهایشان با پاهای خانه بزرگ هم تراز باشد. در کنار آنها سایر اشراف در پشت میزهای دیگری که همچنان کوتاه ترند می نشینند و بانوان به همان ترتیب می نشینند. همه همسران پسران و نوه ها و خیشاوندان نزدیک خاندان سلطنت در سمت چپ خان در جایگاهی کوتاه تر و در کنار آنها همسران اشراف عالی رتبه و اشراف فرود است در جایگاهی همچنان کوتاه تر می نشینند. آنها همه محل تعیین شده خود در طرح فرمانروا را می‌شناسند میزها طوری چیده می‌شوند که خان بزرگ بتواند همه چیز را ببیند تعداد زیادی میز وجود دارد اما نباید تصور کنید که همه مهمانان پشت میزها می‌نشینند زیرا بیشتر اشراف فرود است و اشراف عالی رتبه حاضر در تالار در حالی که به علت کمبود میز روی فرش خانش هستند، غذای خود را میگیرند. تعداد مهمانان بیرون از تالار به چهل هزار نفر میرسد. آنها شامل دیدار کنندگانی با حدایه گرانبه ها هستند، مردانی که اهل کشورهای عجیبی هستند و چیزهای عجیبی آورده هند، همچنین ادهی که به مناسب بالایی رسیدند و آرزوی ترقیه بیشتری دارند. اینها مهمانانی هستند که در چنین فرصتهایی حضور میابند یعنی هنگامی که خانه بزرگ یک مهمانی یا جشن ازدواجی برپا می کند. قبیلای قان تجارت بین المللی شکوفایی را برقرار می کند. تلاش های غوبیلای قان برای پیشرفت تجارت میان چین و دیگر نقاط جهان منجر به حجم بی سابقی از تجارت گردید که در اینجا توسط رابرت مارشال در کتاب طوفانی از شرق شهر داده شده است. هرچند پایان سلطنت قوبیلای به واسطه ناکامی های نظامی و شخصی او تیره گردید موفقیت استثنایی او در ایجاد وحدت در چین به تنهایی موقعیت او را به عنوان یکی از شخصیتهای بزرگ در تاریخ تضمین نموده است اما این امر را نیز باید مورد بحث قرار داد که غبیلای به واسطه ادامه سیاستهای پدر بزرگ خود تا رساندن آنها به نتیجه منطقیشان به واسطه بین المللی ساختن امپراتوری حتی سهم بیشتری را در تاریخ جهان داشته است با سیل دیدار کنندگان خارجی که به مقر خانه بزرگ آمدند، انزوای چین پایان یافت. نافگان تجاری قبیلای بازارهای مهمی را در هندوستان، سریلانکا، مالایا و جاوه پدید آورد. و به دلیل روابط نزدیک قبیلای با ایل خانان، نافگان او با قبول مخاطرات تا خلیج فارس در غرب سفر کرد و در پیشرفت بندر جدید هرموز سهیم شد. کشتی های عرب دارای بادبان های سگوش نیز به طرف شرق بادبان گشودند و در بنادر هانگچو، کوینسای و زایتون به صورت دیدار کنندگان دائمی در آمدند. مصنوعات چین تحت حفاظت سلطه جهانی مغلان به همه جا رسید و برای نخستین بار در تاریخ بشر اروپا از طریق تجارت با خطا همان چین ارتباط مستقیم یافت. بازرگانان در شاهراهای طویل مغلان از شبه جزیره کریمه و از میان سرزمین اردوی زرین تا شهرهای سرای و اطرار سفر می و با عبور از کوهای آلتایی به طرف امپراتوری خان بزرگ می و به شهر تاتو می رسیدند.